إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد محترم تاثیر بسیار منفی در زندگی مسلمان ها گذاشته نه تنهایی که تاثیر منفی در حیات مسلمان ها داره بلکه او نمو تاثیر منفی خودن حتی در غیر مسلمان ها گذاشته که بسیاری از غیر مسلمان ها با دیدن این هواقص در مسلمان ها از دین مقدس اسلام متنفر میشد موضوع که ما میخواییم خدمت شما دوستان به عرض برسانم موضوع بدعت در بین اهل سنت والجماعت است میره بخاطر ازی اهل سنت والجماعت میگم که برادرهای شیع ما علما دارن و علمایشان میشه که در این موضوع خودشان تحقیق بکنند و این موضوع را بررسی بکنند و چیز خلای را که میبینند خودشان بیان بکنند ما اکثریت ما در افغانستان به مذهب حنفی هستیم و در اینجا اهل سنت هستیم به خاطر یک سلسله از بدعتهای وجود داشته و ایبدات امروز بسیار زیاد شده و ضرور است که ما مسلمان ها ایبدات ها را بشناسیم و با فهم و درک درست ایبدات ها خود عظیم میکروب ها و ویروس هایی که در جامعه ما وجود دارن نجات در صورت بدعت چی را میگن؟ اول بدعت در لغت زیادت و نوآوری میگن. بنان هر چیز جدید را که ما احترام میکنیم او نام بدعت گفته میشه. خب گفتیم که بدعت بدعت در لغت بسیار شکل استعمال میشه. اولی که نواوری در وسائل مثلا در قدیم مسلمان ها عادت داشتند که به حج وقتی که می توسط اسب یا حیوانات میرفتن رفتند نواوری شد در وسایل ترانسپورتی مردم که تیار به حج میرن بناا نواوری در وسایل زندگی سابق مثلا مردم پکی دستکی دار شعال بادپکه استفاده میکنن ایران هم میگن لکن این نواری لغوی نواری مصبت است احیانا یک کسی یک شعر جدید میگن یک مقالی جدید نوشته میکنن میگن شاعر بدی هست و خداوند میگن که بدی و سماواتی والارد است از نو زمین و آسمان هست وجود نداشت خداوندینا را خلق کرد به من و بدعتها در جمله بدعتهای حسنه حساب میشن نواوری در وسایل، نواوری در اصالی به زندگی مثلا یک کس سابق اسلوب زندگیش بسیار عقب مانده بود آله زندگیش به شکل پیشرفته خوبتر، زیباتر، مدرنتر است این از دیدگاه شریعت اسلامی درست است صحیح است که مشکل نداره سوم قسمت که به حساب لغت ما او را به لغوی میگه میگه میست که یک سنت ترک شده یک سنت که از بین رفته فراموش مسلمان ها شده یک کسی سعی تلاش میکنه که اینمی سنت دوباره اثر زنده بکنه مثلا سنت نامگذاری امروز در بین مسلمان ها از بین رفته که شاید ما شما در آینده یک درست در باره سنت نامگذاری اسلامی خواب داشته معامل اگه گرفته این به هفته های بعدی هر وقتی قسمت بود تقدیمش خواهد کردم پیغمبر صلی اللہ سنتش بود که نام های مصبت را میمان. مثلا یک نفر نامگذاری گذاری می نام علامه انسان است شما اگر در مصر برین و بر نام عبدالمسیح عبد المسیح است فکر که تو مسیحی هستی ایناله عبدالمحمد المحمد نام گذاشتن نام درست نیست از دیدگاه عقیده اسلامی به خاطر که ما بنده محمد نیستیم دیگر ما امت محمد صلی الله علیه وسلم هستیم یک کسی سعی و تلاش میکنه که اونمون نامه هایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته از امون نامه استفاده بکنه بناهن زنده کردن یک سنت ایره هم ما که چه خوب یک نوع آوری خوب کرد بدعاتون حسن. پیغمبر صلی الله علیه و سلام نماز تراویح خوان و نماز تراویح سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام است. ولی دید که مردم از نمازهای فرض کرده نمازهای تراویح زیاد سعی و تلاش میکنند. صحابه اکرام آمدن به مسجد خوفتن پر شد ما این مبارک رمضان و کلگی خواستن نماز تراویخ بخوانند. بخاطر ازی که پیغم بشترم برای از اینا بفهمه که نماز تراوین نماز فرضی نیست، واجب نیست، نقل است، سنت است. از خاطر گفت که نبیه این دیگه این قصه به ای شکل چرا که سنتی را میگن که پیغمبر سلام گاهی او را انجام داده و احیانا او را ترک کرده باشه تا که سنت شده اما او اعمالی را که پیغمبر دوام دوامدار انجام داده و هیچ وقت ترکش نکرده بازور علماء میگن که چون پیغمبر هیچ ترک نکرده از ازی خاطر میگن ای چی است واجب است خب بخاطر از که تراویر مردم واجب فکر نکنن و حتما باید مریض و جور و کلگی باید بخانند اگر کس میتونم بخانند از این خاطر پیغم گفت که نه نخانی نالت دیمون چون این سنت است ما چند شب خاندون خلاص تا اندازه مردم ایرامو تو ترک کردن عزت اومد را کلکالانهو پس آمد و مردم دعوت کرد در وقت خلافتش که دهیم کمی سنته که پیغم بستم دو داشتم و این دوباره زنده بسازیم پس مسلمانان ها جمع شدن نماز قرابیره خانده ایناله حضرت مرادرضا مگو گفت که نعمت بدعت هاویی این بهترین بدعت است بناً منظورش بدعت اصطلاحی نیست بلکه بدعت لغوی یعنی بهترین نوآوری دوباره بازسازی زنده سازی یک سنت این هم یک کار بدی یا یک نوآوری خوب است که فراموش شده بدعت اصلاحی به را میگن که پیغمبر صلی الله علیه و و سلم در مورد از او گفته که کل بدعت دلاله هر بدعت اصلاحی که ما شما او رو از دیدگاه شریعت اسلامی تعریف میکنیم بی گمراهی هست بدعت اصلاحی کردن اگست بدعت عبارت از او نمو ها افکار، اندیشه ها، نظریات، اعتقادات رواج ها و امور است که در زمان پیغمب صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام صورت نگرفتن آیت و حدیث درباره از او وجود ندارد و اون مردم خودشان به شکل از اشکال که ما پسانو را میخوانیم یا متحصر به ادیان دیگه شدن یا متأثر به افکار دیگه شدن او را انجام میتون و باز در او ثواب میتلبن و میگن که این ثواب داره او را نسبت بدین میدن اینی را بدعت اصطلاحی میگن این بدعت نارواست و این به است چرا گمراهی است؟ به خاطر ازی گمراهی است که دین قدس اسلام اونمو ست فیصدش تکمیل شده ما یک ست فیصد نداریم دیگه وقتی که میم 100 فیصد یعنی اونمو چوکاتی که وجود داشت در اسلام این مکمل الیوم اکمل طولکم دینکم به نه کامل شد دین کامل است و آیت قرآن نازل شد که دین تکمیل شده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین مکمل در امت خود تبلیغ کرده و سنت مکمل و قرآن به شکل کامل بر ما انتقال شده بناهن اگر ما میخوایم در کمپیوتر خود که مکمل اون فایلش تکمیل شده 20 جیبی داشت از 20 جیبیش پر شده یک فایل دیگه رسیف میکنیم یا قبول نمیکنن یا مجبور رسیم یک فایل از او رو اوزو کنیم دلیت کنیم تا که بتانیم یک چیز نویره بیاریم یعنی مثلا به زبان ساده براتون بگویم وقتی که ست تکمیل شد اگر آل یک چیز نویره مجبور هستیم که هر بدعت کلی یک سنت از بین میبرن هر بدعت را که نو دین داخل میکنیم باید یک سنت از بین ببریم از این خاطر بدعت خطر بسیار زیاد داره اول اقسامش رو میخوانیم اقسام بدعت ها. دوم با که اقسام بدعت خواندیم، اگر یاد مرفض با یادیم برن دوم باید موضوع رو بخانیم که چرا بدعت‌ها ها رواش پیدا کردن و سومش نتایج و آثار بدعت چی هست این سه نقطه هست اولش گفتیم چی رو میخانیم اقسام بدعت اینانه از لغت خب که سه قسم است بدعت اصلاحی چند قسم تقسیم میشه قسم اولش بدعت در اعتقاد است ببینین حضرت ایسا علیه سلام یک مسلمان بود یک موحد بود و پیروازی حواریون حضرت عیسی علیه سلام کنشان موحد بودن هر پیغمبر که نعمت میگفت که بگوین که لا اله الا الله بناهن مسئله داشتن خدا که مسیحیای امروز دارن این بدعت یک کسی به نام یا شاول ترتوسی یک یهودی متعصب خواست که دین که دین مقدس اسلام است که او را حضرت عیسی علی سلام بر پیدای خود او را تبلیغ میکرد به ضربه بزنه بناهن اسلام که ازتی سال سلام تبلیغ میکرد او را به مسیحیت دین از دین خدا کشید نامش دین مسیح ماند مسیح پیغمبر بود مسیح دین نداشت دین دین خداست پیغمبر مکلفیت داره که دین خدا رو تبلیغ بکنه پس نامش مسیحیت گذاشتن یعنی دین خدانه دین شخص و حضرت مسیح علیه السلام که ما به او احترام داریم و عقیده داریم که پیغمبر خداست او رو گفتم که ای بچه خداست و خداوند از داشتن فرزن از داشتن بچه پاک و منزه هست الله احد لم یلد ولم یولد ولم لم له هکفوان احد خداوند نه از کسی پیدا شده و نه کسی از خدا پیدا شده و نه خداوند شریک ما مانده داره بناه این بدعت عقیدوی را در بین پیروان حضرت عیسی علیه السلام کی ایجاد کرد؟ اونمون دشمن خدا در بین از اونا مشکل دگیر که ایجاد کردند؟ در بین اون دوها و بودپرستان عقیده واسط جویی واسط جویی به خدا این ها بدعت عقیدتی است که متاسفانه در بین بعضی از مردمات درستی را تفکیک نکردند. و اینه باید بشناسیم خداوند متعال جل جلوهو گفته که الله سامد سمدیت چی مانا؟ معنای سمدیتی است که خداوند نیازی به واسطه و واسطه بازی ها ندارد مردم اتا تصور کردند؟ دوتپرست ها ای قسم تصور می و مسیحیا ای قسم تصور داشتن که خداوند مثل دیگر پاچه ها وارست مثل دیگر رئیس های جنهور وارست پس وقتی که پیش یک پاچه ها یک رئیس جمهور کس میره مجبور است از طریق رئیس دفتر از او پیشش برن از طریق سکرترش پیش از او برن از طریق وزیرش پیشش بره از طریق اسکر و بادیگادش پیش از اون نزدیک شما به معنیات تصور کردن که خداوند هم با میخواستم چیزا ضرورت دارن پس ما باید بعضی مخلوقات سکرتر خدا بسازیم مثل که پاپ ها و کشیش ها خود سکرترهای خدا ساختن اجازه نه که یک کس مستقیما با خدا گپ بزنه و عذر و نیاز بیرن اگر در مسیحیت کس مشکل پیدا میکنه مجبور است پیش کشیش بره و کشیش کنای ازیر انتقال بته. انتقال بتا میگه بازمکت خدا گفت میزنم من تو را میگم باز خدا برای من میگه بازم ما بر تو میگم در دین مقدس اسلام یقیده کاملا مردود است خداوند گفت که الله سمد خداوند سمد است چیمانا؟ سمدیت خداوند یعنی که خداوند ضرورت به واسطه و به بادیگارد و به اشخاص دیگه ندارم و بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که اذا سأل که حبادی وقتی که بنده های من در مورد من از تو سوال می کردند، قریب خب این خداوند ذات سمد است بین نیاز است بابنده های خود گفت که بخیر هم گفت که اداسه علکه ای کسی که قرآن شدی تلاوت میکنی برای هم گفته ای کسی که ترجمی قرآن همی هم پامی ای کسی که تو این آیت ترم و در الفاظش که من دستش سیشه قرآن شریفه ختم کردم نه کسی که در یک ما قرآن ختم میکنه. ولی متوجه معنایش است. قرآن بر از این آمده نداره که پینجوه پرش بته قرآن یک پرش بته ولی بخو. زیاد نخوان مثل اصحاب کرام ورا میگفت ما ده آیه تا میخونیم بعدا آیه تا میخونیم بیادت عمل میکنیم باز ده دو آیه دیگه را میگرفتیم دعایته میخوندیم باز ما را اجرم میکمیدیم احکام از را سر تطبیق میکردیم خود گیری عمل کرده بودیم باز دعایته دیگه را میگرفتیم صحابایت میگردن ما یک دفعه سی بار به شو میخونه و صبح که بینید نماز صبح شراغ ها ختم کردن این از کجا شد؟ ایناله ای بدعت عقیدتی است که انسان صفت بعض کسا نمی صفات صفت خودم مثل صفات خدا فکر میکنن برادر صفات خداوند با صفات مخلوق فرق داره اگر من عالم هستم در تخصص خود عالم هستم اگر من استاد هستم در شرایط به یک رشته‌ای که خاص ور در شرایط به یک مخصوص اما اگر مرا به بریم، من به انجینیرینگ برین من جاهل هستم اگر به ژورنالیسم ببرین استادی کردن نمیتونم باید انسان اعتراف بکنه اگر تو انجینیر هستی تو در که خود عالم هستی اما در که دیگه در منیجمنت باست تو هیچ چیز نمیفهمی، تو در حقوق هیچ چیز نمیفهمی، تو حتی در دوکان این علم مودو علم خاص در یک نشت اگر که خاص و ناقص و در به تجربه داره اما علم خداوند متعال جل جلوه علم علم کامل با زبان موتونی از من دستم. جاهل میگه خدا کل زبان ها رو میفهمه. خدا بر زبان نیاز نداره. بچه قلب دکالب موتون میگه ده خداوند را میفهمه. زبان واسیلاست، مخلوق است. و مخلوق موتونی از من دستم که موتون مجبور اگه پشوندند. که حتی ما یک کسی پشت اگر فارسی زبان هستیم باید کسی برای ما درست فارسی داده شود اگر ازبک هستیم باید برای ما ازبکی گفته شود اما خداوند ضرورت به زبان نداره در قلب انسان چیزی که هست اونمورا می فامن ان کسی که تصور میکنه خود با خداوند از این خاطر برای زود مشکل پیدا میشه دنان بدعت در عقیده چی هست بدعت اعتقادی است که انسان بعضی از عادتها را از ادیان دیگه گرفته در دین خود داخل کنه و فکر بکنه که این جز دین مقدس اسلام است. واسطه واسطوازی در بین مسیحیاست، بود پرستانا وقتی که که خیلی شما خدا را عبادت میکنه آه هم عبادت کرده او پرواله کن ای این پرواله ای تار چی میکنی؟ میگف ای که از واسطه است یا قرب اونا زلفا ما از خدا بسیار دورستیم ما رو به خدا نزدیک میسازن این عقیدی بود که ما از طریق مخلوق از طریق بود به خدا نزدیک میشیم و خداوند گفته که ازا سهلک عنی انی فا قریب وقتی که بنده های ما در باری ما پرسان بکنه ما قریب هستم دوم قسم, ابا... بدعت... قسم دوم بدعت در عبادات است بدعت عبادات بسیار زیاد است یکی فرهنگ است یا یکی عبادت است اگر ما یک کاری را میکنیم میگیم که اینی در فرهنگ ما هیچ ثواب نداره اگر مسلمان است باید اونمو فرهنگ های خلط هم قرد باید بکنه اما اگر باز هم اونمو فرهنگ منحیث یک فرهنگ میکنه دلش مثلا اگر کسی در روز نوروز بگه نوروز وجود داره این نوروز از چه وقت وجود داشت؟ این از زمانهای بودا در کجوه وجود داشت؟ در افغانستان و در ازربایجان و در ایران و در این منطقه که نزدیک تاجکستان اینجا نوروز میشناسن. در بین عرب ها نوروز وجود نداره. بدون این یک فرهنگ در اینجاست و این فرهنگ هم از او قدیم مانده. اینان اگر ما بگوییم که نوروز ثواب داره، چه خطر پیدا میشن چون نوروز در دین ما نیست و از که عدد ادیان قدیم بودن وقتی که ادیان قدیم بودن پس ما باید اورا را ترک بکنیم مشکل چی نیست مشکل این است که بسیاری کسا همه میخواهند مسلمان باشن و هم میخواه به اونمون فرهنگ قدیمی که از ادیان قدیم مانده، اون را هم بگیره و یا این میخواه هم مسلمان باشه هم با فرهنگ قومیش که مخالف با اسلام است، ام را پیروی بکنه مثلا بدعت یکیش در عبادت است و ثومش در تطبیق احکام وقتی که یک کسی قتل کرد و فامیده شد که قتل احمد است و مقتول مظلوم است و این کدام حق نداشده بکشد بنامان خداوند متعال جل, جل جل گفته که برای از این قاتل که قصدن یک کسی را میکشد باید قصاص شدم انا رو پیشی بعضی کس ها که بشینی در مجلس منش برش گفتم که حکم ای خو اینتر است میگن نه در اینجا ما حکم خدا رو قبول نمیکنیم ما رواج قومی خودمون میکنیم اون پختو که بوده کی ما فقط واسه چی پختو که بوده ز پختو نشمکوای از که خدا پاک وای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کفا یا کامل داخل شو یا داخل شو خدا میگه کساست تو میگه نه من دوتا دختر برش میدم بد میگیرم پس این در ضد حکم خدا قرار گرفت و در اینجا در ایمان انسان نقصان مه کسی بیوه بود در مجلسش من را خواست در مجلس گفتم بیوه حق داره از دیدگاه دیر مقدس اسلام خودش صلاحیت خدا داره که شوهر بر خود اختیار داره گفت نی ما قوم مارا ما غیرت ماری میگیم من هفتم غیرتی تو از غیرت خدا از غیرت پیرانبر خدا از غیرت ملائکه های خدا از غیرت اصحاب کرام کنه بلندتر است که خدای عزوجل و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برای حق بده، که خودش همسر خدا اختیار بکنه و تو میگه نه باید بیادر خور به من را یا بر من بگیری را چطور کنه این غیرت منای من را که من را پس برادر من گفتم السلام علیکم من با شما نمیشم تو میبا میکارت بمای <تصفيق> انسان باید انسان مسلمان اگر مسلمان هستی ادخلو فی سلمه برای مسلمان ها میگه بر برای کافر ها نمیگه بره برای میگه که ادعای ایمان نکنه اگر بیننی عقیده که موتوی حکم خدا را ترد بکنیم در زمان هولاکو دو محکمه بود یکی محکمه, محکمه که قانون هولاگو را تطبیق میکرد و یکی محکمه اسلامی بود دلن تب در محکمه ازد دلت میری در محکمه هلاکو دوزی که دید دولت همه کنه میری در محکمه اسلامی دوزی که دید استقاط همه دولت دلت میری در محکمه خدا این تو حکم میکنه و دلت در محکمه هلاکو میره هر کسی که در محکمه هلاکو میرفت و اجماعی علماء میزنی کافر شدن و من لن یحکم بنا انجل الله لدن يحكم بما ابن الله فأولئك هم الفاصقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون قس wellness کس قانون جم Ivan cuz he was for فأولئك هم الكافرون آيات القرآن صراحت دار قس نبخه هم الكافرون تدبق لا نبخه وحكم ثقائب لا نبخه فأولئك هم الظالمون و کسی که در حکم خداوند سهلنگاری میکنه، تا اولایی که هم پاسی کن وقتی که انسان در یک جای میگنید من به ایواز حکم خدا حکم قومیت خدا تطبیق میکنم برادران باید ما شما در گفتن احکام دین از خدا شرمدار شرم ندار از لومت اللائم نترس که کی؟ کدام <risque> نفر با سر تراز میکنه که والا صاحب این خرافاج ما هست بنا چی واج تو هست ما وظیفه ما است که حق به خدا رو بر تو بیان بکنم نمیگونی قبول این اسلام است نمیکنی آزادستی خدا میگه که ان هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور دوز در منو شام دادم دلکاس که شوکر میکنه دلو کافر کافرمیشن لكن من منم میگذارم من که تو در روز قیامت در یخن ما باشه. دست نما توی در روز قیامت در یک تو باشه. که تو باز بویی که شما علمای ظالم شما کسایی که نیامد محمدی به شما شش شبیه های شما را خریده مکرتات شما را گوش گرفتین شما حق بر ما نگفتین کسی که حکم خدا را قبول نمیکنه کامل نیست بر عقیده خود مشکل پیدا میکنه کسی که واسطه می میکنه به خدا در عقیده خود مشکل پیدا میکنه بد دادن در دین خدا نیست کسی که به اعوض قصاص فیصله میکنه در مجلس که بد داده شوه در روز قیامت کل از اینا در مقابل خداوند متعال جل جالالهو محکوم است. بسیاری کساست قسم چهارمی بدعت بدعت در انتقال یا مثلا گرفتن یک حکم برعکس حکم شریعت نام امی راه دیگر مثلا در شریعت اسلامی مهر یک سنت یک وجیبه و یک حق است برای شوهر بر خانم خود در حالت نکا میتن یعنی مهرو علا ما ترابیه رضایت هر قدری که شد ولی اون مهر که برش میته باید بر خانم خود یا آجل یا در آینده و شکل معجل و معجل برازی میتن برای کی میتنم؟ خانه خود میتنم باز خانمش که خبز کرد دلش که پس برای خود بخشید دلش قرار دو وقص خود ماند کل کرد به هیچ کس نداد اینا به دعته که در بین ما رواج آشپیا کردن که پدر دختر فروش پدرای دختر فروش از پیس تویانی دختر خودت میره لعنت خدا سر انسان. برادرهای خوهر فروش کاکاهای بیدرزاد فروش تویانی که فرهنگی پول و پول حرام نارواز این باز میگه که صحیبیخ وحر است تو زرش هستی که داری تو بوده. آن تو رو خنکا که محرش تو میگیری ای ربا مرد خدا که ما خرج تو خود پادر هستی تو چرا میگیری تو خود بیادر هستی تو چرا را میگیری تو خود کاکا هستی تو چرا را یرام میگیری اینا این یک بدعت یا گمروییه سریه است که حکم خدا یک چیز میگه به نام حکم خدا یک چیز دیگه داخل میکنه نامش امنه نامش بیبی بی فاطمه کارایش کارای گنگا نامش نام اسلامی خوی عادتش خوی عادت جاهلیت افتقمنونه به بعد الكتاب و ببعض به بعد من جزا ذلك خداوند مطال جل ما برماد قرآن <تصفيق> عظیم و حکایت میکنه از بنی اسرائیل و بر بگه که امت محمد صحیح مثل یهود ولی خدا جور نکنین اف تؤمنونه دیده اندال کتاب آیا به نصف کتاب ایمان دارین و تکفرونه به بعد و دیگه قسمتهای قرآن و سنت پیغمبر که مخالف طبیعت و عادت تو هست به این کافر میشی او قبول نمی کنی فما جزاء من عرض ذالکه پس جزای این قسم مردم چی هست الا دو جزا برش خداوند میته. خزیل فی الحیات الدنیا در دنیا خداوند ذلیل میسازش خوار میسازش خزیر فی الحیات الدنیا زلت از در زندگی دنیا و یوم و در روز قیامت یردون الی اشد العذاب اینمی انسان ها را خداوند بسخترین عذاب مواجه می سازکه تو نکایت نکای اسلامی مجلس دشمنای خدا او مسلمانه که اونجا کلمه خوانده میشه که این نکا بسته میکنه و در اونجا معذن نگاه کننده رحمان است آغاز خان نگاه شیطان است مازن بر میگه حی علی سلا بیا بر نماز خواندن حی علی فلاح بیا بر استگاری این این مسجد صد سال بعد دیگه نفره نماز میخوان و صد سال بعد ما تو کل ما زیر هستیم. و مجلسه که سازنده به آید شیطان به شیطانا به چرس و بنگ تا بزن اس کو شرابی با چه جوان و شوقی خنه تا شیطان اس با چه جان و شوقی و چشمانت خماری چرس و بنگ تا بزن اس کو نشی شرابی خود شیطان میگه چی هست شیطان شیطان انسانی بعضی کسا این بدعت است بدعت در اعمال میشه در اعتقادات بدعت در عبادات میشه بدعت در اعمال میشه و بدعت در تغییر یک اصطلاح اسلامی و اصطلاح دیگه شیطانی ایوز حکم خدا حکم شیطان بنامه حکم خدا تدبیر کردن است حساسه باز باز اپا کارهایی که او عبادت نیست برادر زنا چول چور, چور کردن مزه را بازی بدن دکچه دکچه اگر چاگر چولای چولوی شیرین دلت است پخته میکنی میخوری دلت اما جایی که دکچه ثواب داره دکچه ثواب نداره عربای چی ندارن که بگن دکچه از در بچیم طازی سایت پس ای دکچه از کجا آمد؟ ای دکچه یک عمل است که اگر کس بریش پختمه کنه شوله پختمه کنه، شوله شیرین پختمه کنه خانه شباه پختمه کنه یا غوری به امام رای کنه اما اگر میگه دکچه ثواب داره یک بدعت شد و دین اسلام دکچه مکشه وجود نداره سمنت سینزرسه میمزرمنون نک. در عربی هیچ کل قشمه کامپیوتر کمپیوتر موجم فحرس الفاظ حدیث شریف است اج به نام سمنک نه پیغمبر مشناخت نه صحابه مشناخت نه تابین مشناختن و نه این رواج بود این یک ای ای ای رواج است در بین مردم افغانستان این ای مردم که امپراتوری فاس از قدیم یک فرهنگ بودن این اونو فرهنگ قدیم خوده باز میگم که ای سمرک مشون کار بیبیست ای کار فلان ولی او که اگه بیبی کردم باشه آیا کار که بیبی میکنه اوستانت است؟ کار که ذره پیغمبر کرده باشه اوستانت است؟ هر نیست؟ <تصفيق> <ك carrots> بس او را به نام دین آوردن اول نکردن متهم ساختن زنای فاسق و فاجر که توبه صبح ایوازه که تراوی بخوانند تهجد بخوانند یاد خدا را بکنند تمام روز رقاص ها و دایره ها دا هست. تا به دسشان و توبه صبح به معصیت خدا مبتلا هستند و توبه نماز نمی خوانند و های خود به عبادت خدا نمی مانند و شوار خود مجبور به اسراف و زیاده روی می کنند این انسان های فاسق و فاجر باز اینی کار را که و صبح به اون و کار شیطان است ایراد به یک بیبی به یک پیغمبر به دین نسبت میده بناه اند سمنک در دین مقدس اسلام وجود نداره یک بدعت است هر بدعت یک سنت کلیشه میخوره روز دوم و روز سوم فاکیه گیری در, در, در اسلام نیست از مولوی روز دو روز سه روز دو روز سه در، در،, در،, در در شریعت اسلامی وجود نداره یک رواج مردم است، او نفر که در زندگی نماز نخونده که خود هم ازید میه این به دعه که اگر کس میره در فاتیه به اصاب ریاکاری که او مرددار خفه نشه اما اگر میگه سواب داره سواب نداره و وقتی که فاتیو اینجا نامش گذاشته شد، اینان یک نفر اینوی فاتیو کلی دو سنت اکند. برش بگو که در جنازه بریم، رفتن در جنازه ثواب است. و حق میت است. حق مورده چی است؟ بالا انسان که باید در جنازه ایش بره. و در تکفین و تجهیز و در کردن از او اشتراک بکن، سهم بگیر، یک دو بلخاک سرش بردن این انرژی نازا و به خاک سپردن در احادیث آمده که ای سنت است پیغمبرصلی الله علیه گفت دو قیراد و قیراد باندازی کوی احاد است اگر کسی جنازه را میخوانه یک یک کوی خود خدا بر اجر میده و اگر کسی در دفنش شربت کنین تا ختمش خدا برش دو کوی او دو قیراد میده اینی در احادیث آمده است اینال بدعت فطری چی که کلی ای فران چه قسم فران یا کسی میگه بیدی که برادر فلانی کس خواهد کده خیلی از با دفاتی هایش میدیم میگن نمیگن بنامه وقتی که گفت از این خاطر بدعت به دیجه است که سنت از بین میبره موضوع دو که گفتیم اینجا میگیم این هست که بدعتها چرا رواج پیدا کرده علت و علت و اسباب به وجود آمدن بدعتها اول علتش علما میگن اول علتش متاثر شدن با اعتقادات دیگران دیگر یک عقیده دارن ما ایوازی که قرآن بخانیم ایوازی که صنات پیغمبر سلسلام ها مطالعه بکنیم اولادای ما ایگرپا را نمیفهمن از این خاطر ما از فیلم‌ها و سریال‌ها ها و همسایه ها های دیگر خود استفاده کرده اینال پیش ما بشه بودپرسته درخت مقدس است بیرامرس هم در جای رفت دیدن که مردم یک دانه درخت رو به نام ذات انواد عبادت میکنن آمدن گفتنی رسول خدا مردمی درخت مقدس است و گرد گرد از این درخت میگردن برمام یک دانه ذات انواد بساز بیرامرس سلام ازیگه پنارم من حکر گفت شنا مثل قلم موسیٰ علیه سلام ادعای غلط و پوش میکنین درخت چیست؟ درخت به خدمت انسان است پس این درخت پرستی و بتاپرستی و بترماش کردن و زیر دویشه درخت اشتوکت تیر کردن این عادتای اوندواست مردم متحصر شدن به عادتای اوندوا این اسپند کردن بود کردن عادتای مسیحی هست هر کشیشی که در کلیسان بیره ما خود اروپایی رفتم دکی داخل شدیم در کلیسا ما خود دیدیم فلماش از پیش ما کشیش دکیشی نه داره اسپندیشت بس اگه خود اسفندیاری تیر کدا اونو تشدید شد اونمو اسفندیاری که جذبش است گردید گرد میکنم میره پیش اونمو از انس الله سلام بوتجور کردم بوتش کساله اونجا بیش ازو دود میکنه اسفندیاری در دی اسلام نیست اسwand در اسلام ثواب ندارن این اسپندگری از کجا پیدا شده اسلام؟ اونم را متأثر شدند به اونجه این قرآن شریف ها را خطه تله ها نوشته کردن و قرآن شریف ها پینجه ها پوش بده این مسجد ها را بسیار قندیل ها بند کردن و قانون لوکس انداختن در مسجد که باز بری در مسجدش بخاری نوارد که گرم شوی واجه از دوگره گرفتن از اون دو اون دو بدکده خدا لوکس جور میکن مسلمان مزید خود از بوریا بوریا در بیش پر لکن لیکن مزید 24 در طاعت و خداوند باشه، درس باشه، تعلیم باشه، انما یه امور و مساجد الله من امن بالله و یه امن آخر. اگر یک فاسق و یک مرافق و یک یهودی و یک کافر مزید بگیره جور بکنه این چیست به درد نمیخورن مسجد آبادیش در طاعت و هست اگر تو بسیار تجار مسلمان هستی یک حافظ قرآن دو از آربان مارش بده دو خاریس های جای جایی نه رو بیایی نمیجه تا طفل مسلمان ها بیاییی مسجد قرآن شریف بدهی یک معلم دریم و دنیا تا معلم ریازی رو بیار بگو بیارن در مسجد اینجا بیشین قرار طفلا را درس بتین اینی آبادی مسجد است که از مسجد استفاده مثبت شود مسجد لکس جور بکن و پرده های لکس درش بخاره قارنهای مور اوار کن و باز در اون یا کلی لگی پیسه خودتان پرتین خودتان باز خیرات کنین باز خیراتان نامش خیرات برین پس خودتان بخورین خودش پیسه میتن باز خودش خب تو, <تصفح> تو کی خیرات کرده بودی سرخه کرده بودی خب ایک فقیر میبوده میدادی تو خودت پیسه جمع کردی آه سهبه نوالا فلانی خواه چل سر بران جمعو دادن ای چیست خودسازی بنام بعضی از عبادتها هست که این مردم وقتی که نام عبادت میتبرش چیز خوب. اول علتش گفتین متحصر شدن به اعتقادات دیگران دوم علتش انتشار احادیث ساختگی بازی از متعصبین احادیث ساختگی جور کردن حتی متعصبینه مثلا احناف که ما هستیم بعضی جور کردن در احادیث گفتن که ابو حنیفه سراج امتی درادات چرا مذهب حنفیه قبول داری به خاطر ازی قبول دارم که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که ابو حنیفه سراج این پیغمبر صلی الله علیه و آله نگفته و ملا علی قایدر موضوعات اونجا کتاب نوشت که حدیث ساختگی است اینا متعصبین احناف جور کردن. ابو حنیفه تا سراج امتی حدیث پیغمبر صلی اللہ نیست که ما امام ابو حنیفه را پرستش بکنیم و بگوییم که از دگاه کنه برطریتش زیاد از چرا پیغمبر تو گفته درست است پیغن... امام عظم سید ما او دوست داریم شخص بزرگوار بود آلم بزرگ بود فقیه بزرگ بود اما پیغمبر صلی اللہ از این حدیث را نگفته این حدیثش نیست این یک ای اک... گفه چیست بسیاری کسا احادیث رو درست تحقیق نمیکنن گفه اضافه از... گی یکانیش صفحه داره که ببینی بگه بیادر یوم البتر یومش عربی بعدش انگلیسی و ترشام فارسی تا فا کجو هست یوم البتر بگه ایش باز بگه آه بیادر خدا گفت که خلق الانسانم این تفاوت وا وا واح این داملاسه بیادر این از کجا پیدا کردی؟ برادرها باید ایگه بار اتیاد بکنیم یعنی مولبتر نه حدیث است نه گفه است یه گفه بیوده است زده دین. دین است اینال نشر بعض از سخنهای موضوعی که نسبت داره به دین میشه این دین فاسد میکنن سوم متاثر شدن با فرهنگ ها فرهنگ های جاهلیت چی شد؟ آمد دین اسلام در پالوی وزی احکام خدا آمد خواست که فرهنگ خدا نورا بکنه مسلمان های حقیقی اصحاب کرام مجرده که فامید دن که اینیجا حکم خداوند این تو میگه حکم شیطان را ترک کردن من فکر میکنم باقی مانده اینمی چیزها را دو زاین بخر میمانیم سبحانکاللہ موا به حمدی که اشهدوالله الالله وستغفرک و توبی لکی